اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبیح اسم ربک به نام خداوند بخشنده بخشایشگر منزه شمار نام پروردگار بلند مرتب اطراف الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا همان خداوندی که آفرید و منظم کرده و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود و آن کس که چراگاه را به وجود آورد. سپس آن را خشک و تیره قرار داد. سنقرئك فلا تنس ما بهزودی قران را بر تو میخوانیم و هرگز فراموش نخواهی كرد إلا ما شاء الله انه یعلم الجهر وما یخفی مگر آنچه را خدا بخواهد كه او آشكار و نهان را میداند و ما تو را برای انجام هر کار خیر آماده می کنیم فذکر این نفعت ذکرا. پس تذکرده اگر تذکر مفید باشد سیدذکر من يخشا. و به زودی کسی که از خدا میترسد متذکر می شود. اشقا. اما بدبخت ترین افراد از آن دوری می گذیند همون کسی که در آتش بزرگ وارد می شود ثم لا يموت ولا سپس در آن آتش نمی نم میرد و نه می شود قد افلح من به یقین کسی که پاکی جوسته رستگار شد. و ذکر اسم فصله. و آنکه نام پروردگارش را یاد کرد، سپس نماز خواند. بل توثرون الدنیا. ولی شما زندگی دنیا را مقدم می دارید. والآخره در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است. این هذا این دستورها در کتب آسمانی پیشین نیز آمده است در کتب ابراهیم و موسی